خانم آقای این دختر خانم آقای پسر راهپتی بیمار و پزشک تو کشور ما یه رابطه‌ی همین مسئله داری دیگه همین یه نعمه یعنی همیشه یه تنهش پنهان انگا وجود داره بین دکترها و خلق ها که یهو یه جاهاییو سری یه, جاهایی سر یه چیزایی برا سرواز می‌کنه مثلا هم مهران مدیر این سریال درحاشیه رو که ساخ ملت جوری زخ کردن انگا خداداد عزیزی گل زده باشه دوباره به استرالیا بعد پزشک از اون بعد چنان بهشون برخورد چنان سر لج افتادن کلا پخش سریال متوقف کردند علت این تن شدهدل دلخوری حال پنهانی مس جایی سرباز میکنه شاید برمیگرده به فرهنگ دکتر رفتن ما میدونیم چرا؟ معمولا ماها وقتی میریم دکتر وقتی میریم از سراغ دکتر از این یادمون به دکتر میفته که اسرائیل به چشم میده باشیم وقتی هم تو اون شرایط بحرانی به دکتر مراجع میکنیم معمولا اونقدر دیگه اوضاع بد اونقدر استرس و در و فشار بعد وقتی و ففلان داریم انتظاریم دکتره. اون شرایط اصلا به پول و مسائل مالی و اینا اصلا فکر نکنه. همچی فلورانس نایتینگل فقط به ما یا به مریض ما برسه سرویس بده، هیچ پولم نخواد. اگه غیر از این باشه دیگه دکترها همشون میشن یه دادم آدم پولپرزو بی احساس و خود بزرگ بین و نمندن پشت پا زننده به سوگند بوقرات و اینا. خب باباجان شما که پول پرست نیستی، یه بار آذری وقتی سر پا هستی روو قبل نشودی، یه ویزیت مختصر بدی و خیلی خوب و محترمانه با لبخند بی‌ایباری به تو مطلعتبه بیمارستان برای یا عزیزان تو ببری برای چکاپ؟ و چرا میذانی دقیقه ن بعد وقتی که دیگه کار بیخ پیدا کرد گریان و نالان و داغون میرید دکتر دیگه تو سر خودت میزنید در تا تو سر دکتره ای؟ اینه که کلا رابطه بیمار پزشک تو ایران شده رابطه رابطهمثل کره شمالی کره جنوبی همیشه هر دو طرف در حال آماده باش اینجا والستادن رو بروم یه جوری بالاخره حال همدیگه رو بگیرن. یکی این وسط بعدیه قدم در را آدیسازی رابطه پزشک و بیمار تو ایران برداره دیگه وگرنه همچان پزشکی جز مشاغل سخت و روی مخ و زیان خواهد بود می‌سه شغلام مثلاً که دکونشون شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و اون هم آنا فروش انواع و اقسام محصولات فرم دهنده، سفت کننده، بزرگ کننده، کوچک کننده، چاق کننده، لاغر کننده، بلند کننده، نرم کننده، روشن کننده خلاص همه محصولات کننده است. بعضی چیزها اصولا چون تأثیر آنچنانی ندارن برای اینکه مشتری نره یقی فروشان داره بگیر که این چیه بود به ما فروختیه و چرا اثر نگیزه چرا بزرگ نشد، چرا کوچک نشد، چرا زود عمر چرا دیر رف فلان فقط از طریق ماهواره اینا فروخته می‌شن. فقط فروش محصولات درصد صد و صد درصد مورد تایید همه جا بدونین که ازا نشونی از فروشنده بهش پیدا کرد زاررا خب جواب میده بیزینس خوبی هم از تو ایران دیگه البته بگم ها این هووج و حیای ایرانی ما هم در رونق گرفتن این بازار ماهواره ای و این سفارشات ها و پیامکی بی تاثیر نیسته چون بخش قابل توجهی از این بازار مربوط به محصولات چیز دیگه میدونین مسولات شب خیری و آره و اینا و ایناستی بلقا قبول کن سخت آدم بره تو داروخانه زل بزنه تو چش داروخانه چی؟ بگی یه چیزی میخوام بتونم شب بخیر گفتن چل پنگ دقیقی بدم اصلا نمیشه از حرفشون اصلا نمیشه از حرفشون